عوذوب بالله من الشیطان رجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالله خير و حافظ و هوارحم الرحمين الله لوالا و تعلب الله العلي العزيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ما كل ولي كه ابن الحسن صلوات و كريمي و علاوي في هر ساعت و في كل ساعه عليا و حافظ و قائد و ناصر و دليل و عينا تا تسكنه هو ارزک از هوا واتمت افو فیها تبیل منور شدن جلسان و غلوب حضار و انوار هدایت حضرت بقیت الله العظمت جهن الله تعالی فجر و شریف و تهجید در فجر حضرت جون ذکر صلوات بر محمد و آل محمد ادیه محصر آقا مولاون و المومنین ادیه ابن ابی طالب و بی بی دو آلم خان و فاطمه زهره سلام اللہ علیه ها به نیابت از آقا عبا عبدالله حسین صلواتی قد بفرمید عبا صلی اللہ و عمد و عمد و فرج آمون عفو ام و گرفتاری از همه دوستان و المومنین هر که تو این آلام آقامون امیر المومنین رو دوست داره انشاءالله از فتنهای آخر زمان بلاهای آخر زمان ابتاله که تو این سال احتمالا گریبان گیرش میشه انشاءالله با آفیت عبور کنه محصر آقا مولا موسیقی جعفر صلوات خیلی فرمیتون الحمدلله خدا را شاکریم منت دارم گذاشتن یه شب دیگه اجازه دادن دوره هم جمع بشیم گرد فضائل من آقاونا میراد ما اون بنید آولاد تایبین و طاهر نشون من جلس اولیزه رسخایی میکنم از محضر استاد عزیزم درس واس میدم حسب امرشون والله اصل پایدار استفاده این جانب اما شب گذشته عرض کردیم مسئله عزیزان که ببینید ما همین قبل از اینی که بخوایم مرتکب عملی تو این عالم بشیم باید متوجه بشیم خالق این عالم حضرت رب ارباب چه درخواستی از ما داره از ما چی میخواد چرا ما رو به این دنیا آورده و به این عوالم قبل و عالم بعد هدفش از آوردن ما تو این دنیا چی بوده تا متوجه نشیم علت و درخواست و خواسته حضرت رب العرباب و همه کارهای خوب عالم که به زعم و ذهن خودمونه انجام بدیم باز اون خواست محقق نشنه شده از پاید اول متوجه بشیم که هدف خداونده و تعال از اینکه که ما رو تو این دنیا قرار داده چی بوده؟ این حرف که من میزنم حرف من نیست حرف آقا مولا و نمیر المومنینه که فرمودند سعادت کسی است که به در کجا و زندگی کرده. برای تو به این دنیا اومده و کجا میخواد بره تا ما هدف خلقت رو پس نفهمیم نمیتونیم بگیم که ما اعمالی که انجام بدیم است که دستورات اله اعمالی است که به زعم خودمون عمل خوبیه حالا وقتی رو مراجعه میکنیم به کتاب خداوند قرآن تو اونجا آیه هست که مبین همین امره ما خلاق دو جنبال انتس الا لی عبدون خلق نکردیم جن و انس رو الا برای حالا معنای ظاهریش عبادت از اونجایی که خداوند در قرآن مجید میفرماید که این کتاب رو راسخون فی علم می فهمن میفهمند علم اونا که علم فهم کتاب رو دارن و روایات ما این آیات اهل بیت رو به عنوان کسانی که مفسر قرآن هستند و کسانی هستند که قرآن رو میفهمند، معرفی میکنه مراجعه میکنیم به اهل بیت. ارباب اون سید الشهدا علیه السلام اولین منزل خروجی از مکه به سمت کربلا این آیه رو تفسیر کردند و فرمودند لیعبدون در این آیه ل... یعنی لیعرفون یعنی کی و کسی نمیتونه ذات عقدس الهی رو بشناسه الا به واسطه ما اهل بیت یعنی تو ما اهل بیت رو نشناسید لیه عرفون حاصل نمیشه و طریق اولا لیه اتفاق نمیفته شناخت اهل بیت خود اهل بیت فهموندن اینجوری نیست که شما به یک کتابی رو بخونید و اهل بیت رو بشناسید شناخت اهل بیت از ناهی خودشون ساته میشه و شما میشناسید اهل بیت رو که بعد از اون ایجاد محبت میکنه و حالا قصههایی دیگه مطلبی که هست علت خلقت ای است که بر هر فردی در هر اصری و هر زمانی در زمان حیاتش مترتبه این فرد چه ای داره از اینکه به بلوغ میرسه از اینکه که خدا رو خدا عبادت بکنه از اینکه بخواد فروع دین رو احکام شرعی رو انجام بده چه نتیجه‌ای قراره برسه آیا خدا نیازه به این عبادات داره آیا مثلا ما نماز نخونیم نقصی نمازن به الله ذات اقدس الهی اتفاق میفته یا امام زمان نیازی به ما ها دارن یا اونا قلی غنی مطلقن یا امام زمان عزیز مطلقه نیازی به منی که فقیر مطلقم نداره. منی که زلیل مطلقم نداره. ولی یه منتی ما گذاشته است حضرت رب العرباب که در هدف خلقت، اصلا دیرو دیشم ارز کردیم در حدیث شریف کسا چی میخونید؟ که خدا میفرماد همه این خلقت رو به خاطر شما پنجتن خلق کرد پس ما اینجا چی کاره ایم؟ ما وجودی اهل بیت برای شناخت اهل بیت ما رو خلق کرده و یه امتیازاتی داده به ما که اگر اینها رو انجام بدهیم یعنی عمل به وظیفه بکنیم قیمت پیدا می کنیم پیدا می کنیم گفتم چقدر ارزش پیدا می کنیم؟ اینقدری ارزش پیدا می کنیم که امام زمان بقیه الله لعظم به شهدای کربلا تو زیارت ناهیه میفرماید به عبی انت و امی پدر امام زمان امام معصومه شهدای کربلا آدمان معمولی هن. به واسطه گره خوردنشون به سید و به واسطه یکی شدنشون با امام حسین شب آشورا امام حسین فرمودند چی؟ همه برید تو حرف امام تا نیست که حالا همه میخواید برید بریدی حالا همه که رفتن که شما برید تا نیست دستور امام این بود که هر که هست بره الا کسانی که مستقرر تو وجود سگید و همه وجودشون امام حسین شده لذا تو زیارت آشروش خواه فقط به امام حسین سلام میدی تو این سلامی به امام حسین داری به همه شهدای کربلا سلام میدی علیه قمر بنی هاشم زهیر. همه غرق شدن تو دریای امیرال ده غرق شدن دریای سیدوشوهد یه لیوان آبی که میزنی تو دریا میگری لیوان آبه این ماهایی غلق اومن فازل تینت اما وقتی برمیگرده تو دریا دیگه آب دریاست دیگه دوییتی وجود نداره این مرحله مرحله تکامل اما چجوری این مرحله حادث میشه؟ این مرحل، این جوری دو... این واصل می... این واسیل شدن یه لوازمی داره. یکی فرو دینه همین احکام شرعی که میتونید یکیش نمازه، یکیش روزه است اینا مهمه، اینا نباشه خلال تو این ارتباط ایجاد میشه اما یه چیزی قبل از اینا هست که این نماز، این روزه این زکات این خمس این احترام به پدر و مادر این گناه نکردن باید طبق این مقدمه یعنی با این نیت انجام بشه لذا میگن نی... یعنی عمل بدون نیت باطله شما تو نماز میخونی اگه نیت درست نباشه باطل میگی قربتان الالله یعنی اگر برای قرب نباشه یعنی واسه نزدیک شدن واسه رز... کسب رضایت نباشه عمل باطله حالا شیعه امیر دوست امیرالمؤمنین محب سید و در کنار همه وظایفی که به عنوان وظایف شرعی و فروع دین داره یه وظایف اصلی داره و وظیفه اصلیش نسبت به امام زمانش اینی که پیغمبر میفرماید اگر کسی امام زمانش رو نشناسد به مرگ جاهلیت مرده یعنی چی؟ یعنی که آقا مثلا من میدونم امام زمان اسمش اینه تاریخ تولدش اینه اسم پدر و مادرشون اینه منظور اینه یا نه امام زمانش رو بشناسه و نسبت به امام زمانش وظیفهش رو انجام بده هر انسانی وظیفهش رو اگر نسبت به امام زمانش انجام بدهد دیندار است چون ارز به امام صادق فهمنه از دین و امام دین خود امامه درست؟ حالا دقت کن شما اگر در زمان امام حسن مجتبی علیه السلام یکی مثل ابن عباس که از صحابه خاص رسول الله مفسر قرانه بسیاری از روایات نقل ابن عباسه آدم خیلی بزرگیه یقینا که خلاط نقل نشده ولی یقینا اهل نمازه اهل روزه است اهل همه عباداته شده اهل مستحبات هم بوده اما وقتی میاد به امام زمان خودش میگه ای کسی که مؤمنین رو ذلیل کردی این دیگه از قیمت میافته. در بعضی از نقل هست خود جب ندید در بعضی نقل ها که خود نبوده حالا اگرم بوده اینها بعدا بعدن البته اما کردن از امامشون ایشالله هم که برگشته و قصه قصه حل شده حرف هم حرف مثالی است که میخواییم بزنیم که این مطلب مهمه بعد به امام زمان چی کار داری میکنی من جوان امام زمانم گجای زندگیمه گجای حیاتمه به قول آنستایت الله و رحمت الله یه فرج کلی داریم یه فرج جزئی داریم فرج جزئی مول تک تک شماست که برسید محضر امام زمان این فرج جزئیه حالا نه اینکه از فرد صبح خب آقا یه ذکی به ما بگو یه کاری بکنیم که برسیم خدمت امام زمان بارها تر خود امام زمان و بزرگانی که مشرف شدن محضر امام زمان گفتن شما عمل به وظیفتون بکنید خود حضرت شما رو هدایت میکنند و میان پیش شما مطلب اینجاست که ادعای امام زمان دوستی تو ما ضعیفه آقا چرا این حرف رو میزنی؟ دلیل داره همه ی حرف امام زمان نسبت به ما های اینه شماهایی که میگید منو دوست دارید چون میگید منو دوست دارید منو نمیبینید و من محب مستقیم محبت کنید اگر راست میگید منو دوست دارید به دوستان من که میتونید محبت کنید بسم الله به دوستان من محبت کنید ببینم چی کار دیگه نسبت به پدر و مادرمون چه جوری به عنوان دوست دو امام زمان فامیلمون چجوری هستیم؟ همه ی اینهایی که دوست امام زمان هستن چجوری باشون رفتار میکنیم؟ تا کسی به خوبی نکنه که بهش خوبی نمیکنیم؟ ببینید وقتی میگن زیارت قبر دوستان ما مثل زیارت قبر قبور ماست وقتی میگن سله رحم وقتی میری عیادت میکنی از یه دوست همیرن این دوست امام زمان که اندا رفتی با امام ملاقات امام زمان و همینه که به شماها ها بنا شما بفهمونن اگه راست می‌گی دنبال کسب رضایت امام زمان هستی اولش رو اینم راست می‌گی که من محبت کنی یا نه تا من نیستم همتونم هم از من میزنید یه ای دارن آیه بحشت بدن عالم آدم میلرزه آیه بحشت می‌فرمودن فکر کردید کی مامای ما رو کشت یهود و صهیونیست و مسیحی‌ها و بتپرستا و هندوها و سیک‌ها و اینا نه مسلمان نکشتم وقتی همه رفتن در خونه امیرالمومنین گفتند یا امیرالمومنین تو خلیفه مایی تو رئیس مایی تو امام مایی بعد پنج وقتی ابن موجه امیرالمومنین به شهادت رسون همه گفتن راحت شدیم سندش تشییع جنازه امیرالمومنینه سندش مخفی بودن قبر امیرالمومنین تا زمان موسی جفره چه فرق بین ما و اونها میگونه خودمونیم دیگه هی hey, نشستیم اینجا داد میزنیم آی خدا لعنت کنه مردم وقت در زمان موسفن جفر آقا امامشون تو سیاه تو زندانه بچه چه میگه در شیعان اونجا دوستان امام زمان امام همون موسفن جفر نفرمودن مهدی ما زمان در سیاهچال غیبته قیبته من شما چه بکردیم امام صادق نفرمودن مهدی ما در آخر زمان آواره بیابونای قیبته من و شما هی نشید مردم کوفه رو لعن بکنین میگه آقا نرفتن کربلا امام حسین تنها گذاشتن اونا که رفتن کربلا که هیچ چی به شهادت رسوندن همون که موندن طوابین اونایی که موندن و دوست امام بودن ما ول نکردیم امام زمانمون اینجا جمع شدید دورت از آیه حضرت زهرا سلام الله علیها مرحوم آیت الله جهانی کتابی داره راجع به از صدیقه سلام الله علیها کتابی بنظیره ایشون از سه دیقه در عالم رؤیا حالا یا مکاشفه میبینه از سلام الله علیها سه بیت شعر میخونن ایشون بعدها تعریف میکنن که من خاطرم نیست دو بیت اولش ولی بیت سومش رو مضمونش اینجوری بیان میکنن که فرمودن حضرت زهرا سلام الله ها به من فرمودن من مظلوم ترین شخص در زمان خودم بودم غریب ترین فرد در زمان خودم بود اما مهدی من در آخر زمان از من مظلوم تره نبودیم اونجا از زهرا رو یاری کنید نبودیم گریه میکنیم یا آبا عبدالله نبودم که هرولا یاریت کند حالا که هست امام زمانت واسه یاری کن چی کار داریم میکنیم دوستان امام زمان چطور میخوایم روز قیامت جواب از زهرا سلام الله علیه ها رو بدیم اگه جلوه رو بگیرن بگن چرا منتقم خون محسن من در زمان شما بود و آماده نبودید تا کند؟ جواب این ظهور بدیم؟ میتونیم بگیم آقا 100 میلیون، 200 میلیون، 300 میلیون شیه تو عالم بود حالا ما, ما آماده میشدیم تک تک وظیفه دارید اگر آماده بشید برای ظهور و بقیه آماده نشند شما رجعت میکنید زمان ظهور اما اگر همه مردم آماده باشند تو یه نفر آماده نباشی ظهور عقب میفته جمله وای بهجت جمله وای علامه تبا طبع همه باید آماده باشند همه باید خودشون آماده ظهور بکنن همه باید نسبت به امام زمانشون این شکلی باشن که اگر امام زمانشون بهشون گفت چند دید دیگه اون فرد از خراسان اومد گفت که امام صادق یبنه رسول الله ما آماده جنگیم صد هزار نفر شمشیر به دست آماده قیام کنید شما حضرت یه نگاهش کرد گفتم برو تو تنور گفت برو تو تنور گفتن مگه نمیگی آماده‌ای برو تو تنور آتش میسوزونه هیچ عقل سلیمی نمیادن بره تو سریام ما چیز میشیم دیگه هر یه خور خوره سواد داری آقا اضرار به نفس آقا ضرر میرسه به بدن آدم حرامه حرف چیه مقابل امام زمان نمیره حزاش شما باشت توبهت کردن یکی از اصحاب حضرت وارد میشه حضرت میگم برو تو تنور تا ازت میان برو تنور. می در تنور می تو تنور میره داخل تنور تو تنور میشه در تنور میشوره همه حواسش اونجاست این مرد میگن نگران نباش برو در بعد چند نقی میده در تنون مرد تو آتش نشست بعد حضرت میگن بیا بیرون یعنی یه پرانتز هم باز کنیم معجزهی که خدا بر حضرت ابراهیم علیه السلام کرد و حضرت امام ساده برای اصحابشون انجام میدن عالم در کف قدرت امامان ماست باید امام تو بشناسی اگه امام تو شناختی اون وقت اگر امام زمانت بگی برو تو آتیش میفهمی این عین ثوابه امام زمانتو بشناسی میگه برو با معاویه صلح میکنم من تو هم برو بیعت کن. میگه این عمل عین ثوابه و بدترین آدم روی زمین معاویه بوده اون موقع دیگه امام میگه برو باش صلح کن دست بده باش بیعت کن باش حالا تو بیل کنی بری حج 800 دورم دور خونه خدا بچرخی این عمل از هر گناهی بدتره چون خلاف عمل امامت انجام دیدی باید بفهمین اینو, اینو تازه فهمیدی تازه آماده زفوری. این تو بطنت بود حالا بسم الله ببینم تو زندگیامون حرفای امام زمان کجای زندگیامونه اولین و مهمترینش محبت به دوستان من به خاطر من به دوستان امام زمان کلیپ نیو به لطن صد به دوستان امام زمان چطوری هستی اینی که دارم میگم حرف من شیخ نیست اینجا نشستم ها. حرف امام زمان به شیخ مفیده شیخ مفید اینکه من غیبت کردم ظهور نکردم ظهور من به تعویق می افتد یه علت داره یه دونه آقا چیه نماز نماز, نماز نمیخونیم ما روزه نمیگیریم مردم دروغ میگن نه همه اینا سر جای خودش ولی یه علت داره که امام زمان من غیبتم طولانی شد اونم اینه که شما دلاتون به هم نزدیک نیست همین دلاتون از هم دوره دلای دوستای امیرالمومنی از هم دوره ابلیس مل. اونم همه همه بشه گذشته این چرا چون اگه ظهور محقق بشه امام زمان سرشو میبره اون پایان وقت موعود خداوند ظهور امام زمان واساش چه همه همقام بشه که دو نفر از دوست امام زمان با هم نتونن دوست بمونن به هر بهونه بینتون اختلاف میندازه تو هیعتیه که اله ماشاءالله تو شهر میری اون پایین شهریه ما بالا شهری اون فقیره اون پول اون, اون اون اینوریه اون اونوریه دقت کنید به هر بهون. تو خونه واده اون ما رفتیم خونه اونا اونجوری نگاه کرد ما رفتیم خونه اینا اینجوری کرد تو فامیل به بهونه های مختلف بینتون جدایی میندازه نمیذاره به هم نزدیک بشید. یه حدیث از موسی جعفر بگم، اینا حتما سر لوحه زندگیتون بذارید. موسی جعفر فرمودند: دوستان ما اهل بیت همه‌شون قیمتیان. حالا بعضی از اینا گناهکارند. شما حق ندارید از او تبری بجویید. از عملش باید تبری بجویید. عملش عمل بدی آقا فلانی دروغ میگه عملش عمل بدی خودش نه خودش دوسته امام زبانه یه هم بهتون بگم اینجا نشستید ادعا نکنید آقا ما امام حسینیم اهل بیتیم حیعتیم مبینم فلانیم آخه چه رفتی به فلانی داریم دوستان امام زمان فرق من شیخی که الان دیگه نشسته دستم در میوم همه احترام میذارن بلند میشم جلوبم با اونی که الان تو اوین گیر کرده میدونی فرق اون چیه فرق من با اون اینه که امام زمان اونو امتحانش کرده اون بنده خدا تو امتحانش باخته مننت سر من گذشت من امتحان نکرده منم امتحان کنم معلوم نیست اونجا جوشم بی نوباشم منم یه چش ابرو ببینم معلوم نیست پیرم یا نرم منم یه روی میلیارد رشو بذاره جلو معلوم نیست بگیرم یا نگیرم از اون نداره انقدر گنده تر از منا بودن یکیش تو قرآن بلمه بوده با او راست مستجاب و دعوست. یعنی زبون وا میکنه زبون زبون خداست دعا میکنه مستجاب میشه یه شبه میشه اصفل و صافل. ببین یهو برای اون نداره بگه ما بابا گریه کنه ما فلانیم ما ما خودم نه بابیان زوبه جزو اون چارت هاست که هر روز صبح سر میتراشه میاد تو میدون پاکار امیر میگه یا علی من با تو هم تنها کسیه که یقه دومیه تو قصه کوچه میگیره میگه مل اون چیکار داری میکنی زوبه پیغمبر اسلام بهش میگه سیف الاسلام از این لقا ولکی ها نیست که خودشون شد؟ امیرال مومنین فهم بود جهنمه آقا تکلیف همه رو روشن کنم شمر که همه لعنتش میکنیم 25 سال قبل قصه ای آشورا تو سفین سردار سپاه امیرال مومنینه جانباز سفین میشه تو سفین شمشیر میخوره اگه خون از بدنش رفته بود کسی بهش نمیرسی شهید رکاب امیرال بود الان همه اون اسمشو با تکریم و اکرام می‌بردیم. چی شد؟ پس فرق خیلی بین ما و اونا که فکر میکنیم گناه نیستا نیست ماهای مام زمان دوستمون داشته شد دستمونو بگیره مام زمان یه آن ولمون نکنه تو گناه که میریم ما مثل خیلیا ها که گناه زیادم صریح از علی موسی مسر رزاس. گناه زیادم یواش یواش حلقه ارتباطتون رو با ما اهل وید کم میکنه پس دستمون رو به امام زمان بگیم آه خودت ما رو حفظمون کن خودت دستمون رو بگیر نرم منم یهو این از این حالا موظفی به دوست امام زمان محبت کنیم پس فرقی بین هیچ کدومه نمیکنه همه رو تکریم کنیم همه رو احترام بذاریم همه رو دوست داشته باشیم مبادا و یه دوست امام زمان تو دلمون باشه هر بدی هم به تو کرده حالا نمیخوای باش معاشرت بکنی کسی نه معاشرت بکن ولی کینه ای تو دلت از کسی نباشه جز دشمنان اهل بیت جز دشمنان امام زمان اینم باید باشه محبت بدون بغض مف نمیارزه اینم هست خوب ولی هر کی هست بدی بهت کرده داش با امام زمان معامله کن بگو آقا من به خاطر شما این بدی که این دوست شما و من به خاطر شما هم میبخشنم اخو خب ببین دلت چه قیمتی پیدا میکنه اخو خب ببین نماز چه رنگی پیدا میکنه ببین روزت چه رنگی پیدا میکنه همه اینا سر چیه؟ سر اینی که به امام زمانمون ثابت کنیم آقا جان ما همه مدله دوستت داریم و پاکارت هستیم ببین دوستان تو اینا فقط به خاطر اینکه تو رو دوست دارن ما بهشون احترام میذاریم اینا از کی یاد گرفتیم از حضرت زهرا سلام الله علیها که فرمودند روایت امام باقر علیه السلام لحظه ورود حضرت زهرا سلام الله علیها به عنوان اولین نفر به بهش حضرت وای میسند من وارد نمیشم جبرئیل میاد بیبی بی جان چرا فهمه دوستانه همسر علی اینا توی این صحرای محشر آوارند تا اونا نیاد من نمیاد دستور میاد حضرت خدا حضرت رب عرباب یه هر که میخواید شفاعت کنید امام واقعی فهمند مادرمون حضرت زهرام مثل مرقی که دانه برمیداره از لاریگزا دوستانش و شماها رو برمی داره جمع می‌کنه به همراه خودش وارد بهشت می‌کنه بعد دوباره دم در بهشت هنوز این جمع دارن حضرت بی... حضرت صد... صدیقه سلام الله علیها با دوستان دارن وارد میشن بعد مادرتون از از زهراشون امام صادق فرمودن هر کی امیرالمومنین مادرش از از زهراست میگه مادرتون به شماها میگه هر کی به شماها محبت کرده شفاعتشو بکنید نمیگه هر کی دوست امیرالمومنین نا میگه هر کی دوست دوست امیرالم این معنی حل الدین حب به دوست داشتن به خاطر امیرالمومنین و اهل بیت بغض به خاطر امیرالمومنین و اهل بیت اون وقت این که اینجوری که بیاید جلو وقتی کسی بهت نگاه میکنه که اینو میبینی این اینا هییتی انا اینا, ها؟ اینا ایمام با ام حسینین خیلی بچه با معرفتی من بهش بدی کردم و من خوبی کردم آروم آروم به واسطه محبت تو میاد در خونه ما به زمان میشینه آروم آروم به خاطر تو به خاطر محبتی که تو کردی میاد سر سفره سیدوش و هدا میشینه وقت میدونی به خاطر این چه قیمتی بهت میدن هر از یه قصه بگم ارزه روزی مثلا چنده داو فال داو فالین دقام گذشت به بخش قصه دست یکی به واسطه محبت شما بیاد تو روزه امام حسین بیاد با امام زمان آشتی کنه زمان موسای پیغمبره یه آبدی بوده همش عبادت میکرده ابلیس میگه یکی از حوالیون صدا اشتاده میگه برو این گولش بزن یه چیز روخ گولش پزنی میگه برو عبادت یه آباری که درست برو همه رو با خودمون گول میزنه یه هم بگم بهتون خیلی از این گناه هایی که ما میبینیم مردم انجام میدن به مراتب بدترش رو خودمون داریم انجام میدیم. ولی چون ما خیلی مدعیم پایین نمیاییم. دوستان امیرالمومنین دروغ و قیبت و کبر و کبر گناهیه که خدا ابلیس رو به خاطرش انداخت بیرون بعضی از ماها خیلی کبر داریم خیلی خیال میکنیم چهار دفعه اومدیم به لطفه ما به زمان دستمون رو گرفته و ورده تو مسجد و حیعت خیلی خیال میکنیم بهتر از همه ایم خیال رو راحت بکنم سید و شهده و اگر شما فکر کنید یه نفر از شما پایینتره از ما نیستید یه نفر پس پایین تر از همه بدونیم هر آب رویی داریم به خاطر عربا و ما آب رویی نداریم به خاطر این سیاهی به مردم به من و شما احترام بزارن. یه نهیتیه نه ماموسیمیه ولی مابرون نده قیمتی نده همه صدر صدق سر عزد زهرا سلام الله علیه به پاییم نمکتون نشگنیم به پایی دل امام زمانتون رو خون نکنید کسی بیان بهتون یه عالمی تو نجف چهل هفته شبای جمعه رفت سهله که امام زمان رو ببینه کار ساده ای نیست حرفش ساده چهل هفته بلنشوی جمعکران مثلا هر هفته مقاییت باشی بری بیه. کار ساده ای نیست بعدی چهل هفته یه فردی اومد گفت که امام زمان رو میخوایی ببینی که آره که فردوسو فلان جا باش میاد فردوسو در بازار کوفه و طرف رو میبره تو بازار کوفه بیشوندش یه مغازه پیرمرد قفلسازی این آلم میشینه سلام درده یکی این فرد که علای مامزم قرار بیان اینجا کیه این فرد نگاه میکنه تسبیحی نمیدونم شماری نمیدونم یک عکس گنده فلانی حال یا چپچپی نگاه کنه سبب از یه هستم میرید و نگاه میکنه یه شب چکایی شده یه حد فلان چشاشو یه جوری میکنه و یه قفل مرد قفل سازه داره قفل می سازه که این چه آبه دیشد نه نت تذکری نه تسبیح از این تسبیح گذشتم این یه پیرزنه اومد گفت این قفل از من می نگاه کنم دارم یه قفل زنی زن زده است به این قفل سازه مادر چقدر بهت گفتن می ارزه گفت حقیقتا من هزار تومن نیاز دارم این مغازه های عقبتر گفتن دیویست هم مثلا به حرف من دیویست هم ب گومانم دیوا کردام گفتم حال دیگه قفله زنجیری گفت این ما در سرت کلا گذاشتن این گفت دو تومن میگرزه دو تومن کو نوشه به دو داد به رفت مننت نزدش گفت آره این 200 تومن میگرزه علی من صدقه میدم دو برو نه گفت این دو تومن میارزه. گفت دقایقی بعد گوهش دمیه سید جهیل قدری اومد فهم ما زمانه بلندشون هم هزت گفتن یعنی که این نمیدونه ما زمانه خون صحبت کرد با همین پیره مرده حضرت صاحبو بعد هم با من صحبت کردن و بعد فهم بودن ببین مثل این باش نسبت به دوستان ما چجوریه مشکل پیره چجوری حل کرد به عشق ما ما میاییم سر وقتتون اگه نصد دو دوستان ما اینجوری باشید بعد امام زمان تشویق پردن به این پیره گفتم این سعید رو گفت نه یه یه روز هر هفته میاد سر با ما میزنه نه آبده نه ادعایی داره نه فلان فقط محبت میکنه به دوستان امیرالمومنین. به عشق امام زمان امام زمان هر هفته بهش سر میزنه. به مال امام زمانت میگردی. اینا همه جلوه های امام زمان هست همه اینا که ما زمان رو دوست دارن خلقومن فازل تینتنان جلوای ما زمانن به عشق ما زمان به اینا خدمت کن بعدی بهت کرد ازش بگذر میتونی اینجوری باشی عدای نیستا خیلی وضع خودمون کار بکنیم ولی قیمت پیدا میکنیم قصرم فردا شب میگم نیا با اما روزه من کجا بریم امشب گفتن همه ی انوار از حضرت زهرا سلام الله علیها هرچه چه نوره مال بیبیه همان نور ما اهل بیت منشق شده نور حضرت زهرا سلام الله علیها امشب کجا بریم سراغ کدوم نور حضرت زهرا بریم نمیدونم والله بسم الله فقم همین ایام دیگه فضه اومد گفت یا امیر المومنين. من برم خسته شدم امیر فرمودن فهموند تو دیگه چرا زهرام که رفت تو چرا میخوای منو ول کنی بری گفت یا خسته شدم حالا زینب سلام الله علیه ها میره سجاده مادرش رو میکنه چادر مادر رو سر میکشه شروع میکنه گریه کردن آروم میشه امام حسین تو خونه راه میره گریه میکنه آروم میشه اما حسن منو بیچاره کرد هی میره میشنه نگاه میکنه خیره خیره به در خیلی سخته خیلی سخته پیر شد امام حسن گفت آقا چقدر زود پیر شدی؟ حضرت گفته ما بنی هاشم زود پیر میشیم آقا اون چه امام حسن دید هیچ ندید حتی امیرال ندید هی hey, امیرال معاملین حسن جان چی شد تو کوچه؟ امام حسن هیچی نمیکن مادر قسم داده بود حسن جان به باباد بگیا، باباد غیرت الله علی میمیره به چی شد هی hey, تو سینش نگهدش هی hey, نگهدش سی و پنج سال بعد واقعی مدینه تو مسجد امام حسن و و سه قمر و وارد شدن شروع کردن و سلام علیه کردن سلام نداریکم سلام رفتن جلو یوه امام حسن رسید به مغیره روشو برگردو برگردون گفیم نرسول الله بسه دیگه بعد سی و سال امام حسن گریه کرد گفیم واقعی نمیدونی من امام حسن نمیدونی این چرا روز ما برد بگم چیکار کرد نمیگم من جلعتش ندارم دارم یک کلمه امام صادق فرمود خلقت مادر ما انسیت الحوراست یعنی اگه برگ گلی رو پوست مادر ما بشینه جاش میمونه الهی بشکنه دستت مغیره الهی بشکنه حیعت بیتو زهرا سلام الله علیه b t, -z -s -t i -r.